دلم جز مهر محرویان طریقی بر نمیگیرد گیرد زهر در می فندش ولی که در نمیگیرد. خدا را ای نسیحت گو حدیث ساغر و میگو که نقشی در خیال ما از این خوشتر نمیگیرد. بیا ای ساغی گل رخ بیا ور باده رنگین که فکری در درون ما از این بهتر نمیگیرد سررای میکشم پنهان و مردم دفتر انگارند عجب گر آتش این زرب در دفتر نمیگیرد. من این دلق مرقع را بخواهم سوختن روزی که پیر می فروشانش به جامی بر نمیگیرد. از آن روح هست یاران را صفاها بامه لعلش که غیر از راستی نقشی در آن جوهر نمیگیرد سر و چشمی چونین دل کشت و گویی چشم از او بردوز برو که وعظ بی معنی مرا در سر نمیگیرد، گیرد نصیحت گوه رندان را که با حکم قضا جنگ است دلش بس تنگ می بینم مگر ساغر نمیگیرد میان گریه میخندم که چون شم اندر این مجلس زبان آتشینم هست لیکن در نمیگیرد چه خوش سید دلم کردی بنازم چشم مستت را که کس مرغان وحشی را از این خوشتر تر نمیگیرد سخن در احتیاج ما و استقنای معشوق است چه سود افسون ای دل که در دل بر نمیگیرد من و آینه را روزی به دست دارم سکن در وار اگر میگیرد این آتش زمانی ور نمیگیرد خدا را رحمی ایمون ام که در ویش سر کویت دری دیگر نمیداناند رهی دیگر نمیگیرد. بدین شعر تر شیرین ز شاهنشه عجب دارم که سرتاب های حافظ را چرا در ذر نمیگیرد